اللهم صل على ال <سؤال> الله على الطيبين الطاهرين على جميع يا چون مطالبی رو که اصحاب در اینجا و قبل از اصحاب هم در کتب اهل سنت و شیعه محسن آمده و مقدار اجماعی که مناسب با متعرض بشیم و همه مطلب گفته بشه، از کتاب مرموم استاد متعرض شدیم و بخصیم یه مقدار تلامه ایشان خونده میشه برپخصی در بحث تلامه ایشان یه تعلیقات مختصری فیلم زده میشه تا برگردن به بحث خود از سورم تا اینجا موارد شهر و مرموم استاد برم در مراد جدی در در حسابت رو ایشان تحصیماتی رو فرموندن که ندرم امورده که دیشان در حقیقه و آیان دیگری که از هستند هستن به یک مغربی سفهی مشروف شده به اون تعبد و اون تعبط و اصالات و ما این عبارات خوندیم که معلوم بشه که این بحث تعبط و اصالات و و حدود این اصالات و یا یا اصالات و حقیقه و در کلمات حسولی تا چه مرداری آمده بر توضیحش رو عرض میکنن مثلا نگاه کردیم ویروز مرمو مصدار حتی احتمال دادن که اصحابات حقیقه جاری بشه حتی در صورتی که ما احتمال بودیم مثلا متکلم به این دوقت آشنا نباشه اصلا یک کسی خیلی فارسی بلند نیست با به آب بیان بگیم به اساسر حقیقت هم بکنیم مرادش همین معنات در زبان فارسی ظاهر احبارت استاد این بود اینه اساسر حقیقت جاری بشه حتی در جایی که یقین یعنی نزاییم متکرده این آرف به وضعه اینه خب این واضحه که در جایی که شخص آرف به این لغت نیست و شرک در این خب ما چنین زیره و قناعی نداریم که لحظه را هم در حیقت بکنه. یعنی واقعا این تحجیباوره که احتمال داده بشه که اساطر حدیقه حتی در مثل این مورد که آشنایی به زبان نداره باز هم اساطر حیقت جاری بشه انصافا تحجیباوره خب مثلا شاید این طور بوده که حتی احتمال می‌دادن که اساطیر حیفه نورد تعبدی باشه حتی در این جور موردی هم در این طور موارد هم اساطیر حیفه جایی باشه و به نظر ما اصولا مناسب نیست این جور بحث‌ها و این طور بحث ها به اصطلاح کتب علمی بیاد خب یک امر کاملا واضح و حرفی کسی که بی یک لغت آشنایی نداره به کلامش اثر میشه. به... نمیخواد که کتاب حیمین برگر ای کسی آرف بلغت نواشه و اسالت الحیقه در مورد کلام اون جاری میشه آزن و اصلا نوبت این نوبت که بخواد اصطاد متعرض بشن و بخواد نه اساس الحیقه جاری نمیشه موضوع هم بیریم که اصیبت کشون اساس الحیقه رو در اینجا در رحض مراد جدی مطرح کردن اصولا کسی که آرف بلغت نیست اون مراد استعمالی شوازنه درست همون را دیگه بر و جمعه انتقاله. خب اگه فارسی بر ازگو آبیا می‌گشت این چیز دیگه مورد بحث. که لا کرام در همین زمینه استعمال علایاله روشن شد یعنی این اساس الهی این مربوط میشه این وقت توهم احتمال بوده از من در این عبادت که هر آن دیدم مثل همون ویزا و منوازی و, من و مقوم آیا شانسی تو این که نبود داری ایشون نظر شده دیگه بود به هر حال اینو من من توضیح میدم بدون شرد در طول تاریخ الان یا فقر یا اصول اسلامی در اثارت و حیرت بیش از اون اقدار اغلایی رو دور شده این هست این اشمال و این سه ریجاله من توضیح شرط می کنم این هست اما شمولش ها اینجا خیلی روشن نیست یه مطلبی هم به تحتی ارواییان سرمودن که من توضیح دادم چون یه جواب اجمالی دادن که اصحاب نجمه که دفتید کردن آهم بودن و رضا قرار رو مخفی نکن اصلا این جواب بسیار جواب اجمالی و یعنی به تقریبا مثل اینکه انسان بگه حب مثلا روز هوا روشنه هیچ بازی محیل بازی خاصی نیست اجمالا چرا که مشکل کار سر اون مختیری نیست سر ناقلی نفیشن تران تحجب هر حضا توس فرسان حسن محبوب در کتاب خودش این رویت رو تحقیق کرده فرسان یک قطعه شد تو کتاب سرات مورده یه قطعه چه مثلا راجب تنسی منوان مثال به بوده زنی که در قدرز یه سؤالی بوده که از خونش خارج بشی یعنی قطعه وفاق بوده یه که هرچی بگیگر منوان مثال خب سؤال در قطعه وفاق بوده منوان مثال هست که این بوده که سؤال دو تا بخلت بوده ای که چون چون در قطعه پلاه زن حقه مسلم داره لا تخور جهنه لا تخور جهنه لا تخور جهنه این بحثی در وفات هم همینطوره، در عبدیل وفات هم زن از خانه شوهر خارج نشه یه بحثیه اینکه که برپرد خارج نشه برای مثل حج مستقی شده حج بریانه حالا فصل در یه روایتی حضور جمع کرده فصل حسن محبوب در اون کتاب عصبیش تحتیش شده یه جای کتاب حج مورده. یکیشه تو کتاب مثال کتاب اده آورده خب مرموم کلیلی وقتی کتاب حج نمیشه که در حج محبوب پیش شده همون قسمت حجش اگرده وقتی, هر وقتی, هر وقتی, هر وقتی اون طرف نوشته ما شواهر اقامه کردیم که حدیث واحد در مسادر اصحاب اولیه مسادر اولیه تختیر شده بعضیهای اصحاب ما نیامدن این تختیرها رو جمع بکنیم اینه مشکل کار اینه من توضیحاتش رو چند بار عرض کردم بحث ظهور فرعه بحث متن حصولا در غوضه های ما الان آن متعصدانه شیلی روی متن حدیث کار نمیشه اینجا حالا میخوام بگم ای به کار نمیشه نه اشتا بعضی حالا برزه مبانی خاصی دارن پس این مسلم با مثال با که شما هم میاد این ان شاءالله نتیجه اینجا در مجموعه های علمیه کتاب رساله و, و بحثه اصحاب خب اینا معیار های فقهی و اصولی ما مرقوم شده که از حدیث از سه جهت بحث میشه یکی صحیحو که سند باشه بحث خبر باشه و باشه یکی جهت میشه که تغییر باشه یکم دلالان همین هم در کلمات نایمی آنوزه همین هم در کلمات استادترن خب به بحث سوال که خب خب بود بعد از سهور متن بست میشه چهار تا میشه یعنی خب بودی که بست مدنم اضافه میشه اول متن بیار بعد از اینکه این متن این آمد اون مسائل دلالت و رو و اسماقل عقیق رو اکش میکنی بگذاریم در مقاماته یعنی نه دیگه بگمین حدیث این مهدم و لذا البته از کرد این حمده بر تساموه نشه کن اصورا اصحاب ما به احادیس از دید عمل بیشتر نگاه کردن و لذا ممکنست مهدم یک باشه عمل اصحاب کردن دنبال عمل رو الان در کتاب وصائل که در این چاپای امترد شده تا یه هر دیگه مطلب تفریح شده نزیاد اون که نره که اگر ناسه از خاکی نره میکنن از فقیه هم نره میکنم یا و همون مثله از که چیزی نزید که 90 درصد مواقع نره و همون و در اینطور میگه از گفتن چون گفت نره و همون یعنی میخواد بگی لحظه من دقیقا نقل نکرده اینطور احتمال داده شده که حال. این صاحب همین کتاب رسائب با همین مسادر موپید ما یعنی با همین کافی مطبوع و تحضیر مطبوع و فقیه مطبوع خیلی اختلاف داره نکن اختلاف خیلی این نسبتش فوق العاده بالاست چرا شما اینا ها ظاهرم بیشن به حال و تلقیه و قبول بودن خیلی اون زرافت های محنی کار نشده ولی لذا این که استاد فرمودن تطریقش در مقام درست نیست نه این اشکال سر اصحاب نیست اشکال سر وساقه و جلالت قدر نیست در اون مسئله اولی حدیث تختی شده کتاب ما تنظیم شدن یعنی تصمیف بوده شد مثلا رواهات حجی یک جاوردن رواهات یک جاوردن این قبل از شیخ کننگی و قبل از شیخ توسی و قبل از صدو این کارها شده لذا یک حدیثی که راجب یک موضوع بوده نه توی صلاح بوده نه توی هنج بوده نصفش توی عده بوده این برداشتن هم اون اولیه تفریه کردن کلیگم کنه نکرده کلیگم مثلا باید آنستان اینا جمع می کرده جا جمع نکرده در کتاب رو صلاح کتاب کلیگم فصلی به جدا ای جدا روی ای سال و قوائد بوده دقیق می این یک نکته است که باید در نظر گرفت اینی که ایشون فهمدن به این صورت نیست بعد ایشون در تقسیم بندیشون فهمدن و اما امکان شک فیلمراد لعظه احتمال عدم کنگ ظاهر مرادن جدیان هست لمتکلمن انعقاد زهود این شکل رو رنیه متعشر بشن بعد ایشون فهمدن سبب شک کردیه یکی از امور سلاس هست احتمال قبلت مشکلم ان بیان این احتمال هست مشکلم قبلل در باش. بعد شما فردن با حاضل احتمال منفی و به نصف کلداد مع یعنی احتمال وجود صورتن وارد نیست نیازی به اسات زهور و اسات جیی و اعات حینده و اسات عدمقلی ندا نمیدونم حالا مده بعض دست با مورداضجهدی استال رو در نمی این مطلبیشون و ها در احتمال منفی و به نصف تلاله کلام مردیم و سلام بگیم بس سر این روایات این نیست که این کلمات این مرد این کلمات رواد این یه سیر خارشی دارن من عرض کردم روایات ما یک مشکل کلی داره لذا، خدا فرموند که کسی که معاریز کلام و روایات مارد دقیقا برو فرمه این فقیه هست یعنی واقعی لا نماز دردش درد نیکن فقیه هست حتی یه عرب معاریز معاریز گوش و کنایه به اصطلاح بازی نه فعاروز معراض یعنی کنایه ضدیق اصطلاحی گفت یک لحظی گفت مرادش چیز دیگه و فرموند اینا در نبور و شدمه نه را تو بحثایی درست میکنیم ولنا منها و برمونن ان انل کلمه تو از روایات هست انل آیه که بحث محلومی هم دارند هم انل کلمه داریم هم انل آیه داریم لطن سر کوئلات سبیعی نورشا یک سخم ممکنه به هفتاد رشت به خط این دقت و ذرافت در کلمات احلبهی خودشی که از درجات آدیت راه هست این بحث نیست که این احتمال در کلمات ما باشه که عقلت کرمه بحث سر این روایاتیست که الان در اختیار ماست از کنان در از دن که روایات در مدینه صادر شده زبطش و تصدیلش در کوفه بوده ما چندین کتاب خیلی مهم در سلام بسن کتاب حریز شواهد نشون میده که حریف هیچی یک از این روایت خودش از امام نشده همه رو فرصت ازها برمشه بلوچه ازها بزرگان مثل زراره و محمد دو مصدم لذا بودیه قدره فرموز بحث احتمال در حقه علیمه نیست اصلا ترشبه نزارو کوی بزن الله نفس با جلال فیشه بحثتر این نیست که امام احتمال قفل فرموی بحث احتمال قفلت در حق ایمه می تواند اکتمال به نسبت لله این احتمال این اما وارد در شعن کسانی که راوی این میراسن مثلا الان هم اخیدا ما روایت فرسوی این قصد که به دوست رو سه شهار تا روایت داره شا... زراره که شاگردار زراره ایش حریده ایش جمیده از هر کسیمشون مهیار رو با یه نکته خاصی بخلی کردن چون میگم ها اون مساله مرد خیلی دقت مثلا یه شاگر زوره نقمی کرده که در قسط مثل روغنکای یکی زیه مثل یکی مثل دو مثل روغن این یه مرتبه یک یه روحید از باز شاگرد دیگه یه زوره نقمی کرده از زوره نبی عبدالله ما علیه ما جرا علیه ما خیلی از دو اینجا بس سر امام نیست. امام قطعا یک چیز سرموزی که ما در شبهه نداری بوده. بس از آن نظامن همیشه ارز کردن یک هنری خدا بما داده که بیش از هشتار درصد مشکلات روایات ما به همه برمیگرده. به روحات برمیگرده. به مسادر اصحاب برمیگرده. اطلا مثل اشکالات قبل از امامه. یعنی ما الان آن حتی به زراره می کنیم دقیق امام رو بحث برسر خب ما خب یکیه کل ما انصر سوال ما یکیه یزیه مثل دوم یکیه خب اینا با همیگه محمدانی اصلا استنتاج فشیشون فرم میکنه اصلا شون اصلا ما بحث متن رو شیعی جدی نگرد اصلا من نبیدان شو احتمالا این باشه بله علم و این این صاحباً بخص متن خیلی قابل توجه شد. با قابل توجه شد. اصلا این موارد مثل ظهورات و نگم کذا اینا تره متن خب. ببینیم متن اول چیه. تا بعضی این مبارس بردی متن محطمت بکنه. اینا دنباله یعنی ما باید اون مسئله اساسی رو متن قرار به هر حال این مطلب رو قبل بکنه در میراز های علمی ما، از همین که دارن ما الان یک نوشتاری رو با عنوان دقیق بخونیم به همه نصفت بدیم خیلی مشکله از بعضی از نامه‌ها که به امامی محسوبه، منصوبه بعضی از این طبیعات اخیر امام زمان یا بعضی این طبیعات امام اصل امام ها دیگر اما کتاب مثل فررزا مثل فرسو مصباح و شریعه کتاب هایی که انهایی از حیقت سجدی که حساب خاص خودش حسن ما کتاب رو برمه مثل حدیث شرایزی که یه رساله موندیه رساله معنور اسلام که بر اثر رضا منصوب. اینها ما یه بحثی رو مطرح کردیم کتوبی که منصوبن به خود اندوره به استثنای مثل کتاب سیف الاسلامیه این به عنوان یک کتاب یک مجموعه تفور رضا مثل تفسیر امام عسکری اینجوری یک این مجموعه ای که به صورت کتاب برای معله محسوب هیچ کدوم اینها به لحاظ سندی واضح نیستن حتی هر ای این صحیفت و این صحیفت و که از امام رضا علیه حساب شده شاید در و اینکه که راوی نرمه کرده نه این داره نوشه خود حضرد باشه شاید چل پنجاه داره شست داره سند داره تمام آسانی داشت محله اشتاره بلایست تمام آسانی داشت که استفاده فرزین پس این رو خوب دقت کنه این کیشون ایشون احتمال قفلت المتکلم ان بیان قرینه و هاقل احتمال منفی و به نسبت الالعیونه علیه همه السلام اصلا جایی بحث نیست چون این در است که شما اثبات بکنین این کلام مال امامه اصل این ثابت نیست اما در بعضی از روایات به خود راوی توی نسبت بنیم از ان الامام علیه السلام من من ت... و مرارن حرض کردم عزه از اهل سنت معاصر و قبلی اشتار میخوانی که روایات شما که مثلا فتاوای عبو مختلفی مختلفه یا فتاوای شافعی مختلفه تا داره خب علمه شما هم روایات این مختلفه من این توضیح رو چند بار از کنم که اون روشن بشه تا کلمات عبو حنیف و شافعی در مقام سبوت شباه نشید یعنی اونا خودشون معتقدن مثلا شافعی تو راخته بود فتواش این بود که رفت عرض شد فتواش عرض شد دو تارز دو مقام سهوده یعنی واقعا دو رعیه اما تارز در کلمات این مره ایمانسان تو مقام اثباته نیمون که امام صادق اول رعی شد این بود بعد رعیش این شد یا امام واقع رعیشون این بود امام صادق رعیشون این بود از برزا برمونن ان کلام آخرن. اول نام یوشده و کلام آخرنا و انه کلام آخرنا یوشده کلام ما اصلا معیمه متعدد نه امام واحد ما در کلمات تا تعارضی که پیدا شده مال بعده در اون رویات معروف فیضه به مختار به عرض می میگه اینقدر اصحاب ما اختلاق دارم از که مجل کوپ وارد می شنم هر کسی برای خودش یه چیز میگه اصلا نه دیگه از دین برگرم افاد اشخ و پیدینی این چرا از امام می اینا که پیش من می من یک کلامه همین که از اینجا بیرون می اختلاف می تا پیش من اختلافی نیست کلون یوری و هنید آره ازن هر کدوم دنبال عنوان و تفکرات خواست و خودشون بله پیش من که هستن خوب این اصلا این کلام رو یعنی بعض از امور نفیش هم مناسب نیست. به احتمال این نیست که این مره مثلا قفلتی کردن یا اگر در روایات توی این روایت این قدیمه سوشی نیست به قدیمه روایت این قدیمه باید باشه اگر قفلتی هست یا از خود راه نیست یا از مسادر بعدی چون نسخه بوده ما این باب رو کاملا باز کردیم که ممکن است یک نسخه واحده این دو سی جور نه شده تو نسخه سخت بوده این مبارس رجالی رو ما فقط به دنبال رسافت نیستیم به دنبال ضعف و دقت و صحت نسخه بود دقت میکنید این بحث رو مثلا مطرح میکنن یعنی ما ما مطرح میکنین دیرالی ندید این واقعیت خارجی اینه این منتظر ندارن در رابی که تظهور داره اون کسی که این خود من مثلا به من بگن آيا زراره در واقع خود چی گفته خود من زراره کلامش وازنی شبیه بهمان نمیسن واقعا یه شاگردش رفته جره ما یک شاگردش رفته ما همست دارو یه شاگردش رفته یک جریه مثل جوان ما خود ما وقت اینا هم نهی که یک نفر یک شاگرد دو جور نروی هر شاگرد یک جور نروی کرد ها یه دحسی دیگه که ما در مقام همه چه کارو میکنیم از کن جلوزم توضیحی دادن یه بحث این است این یا نقل معنا یا این در روایات اصحاب آمده خیلی خب این مشکل آیا ما در مقابل مشکل تسریم بشیم؟ نه تسریم نشیم اون بحث دیگری چه راه های ما داریم برای اون مفتن صحیح تشریف بکنیم اون بحث دیگری این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنیم علاج این کار چیه راه علاج این کار چی جوریه اون بحث دیگری بکنیم. من دکتر میکنم. بحث شناخت یک چیز این که بگیم مثلا مثل تعارض در رواجت هست. این یک بحث این که اگر رو بکنیم، اون بحث دیگری اون راه قاس خودش رو برحل میشه. و اما ایشون و اما احتمال تعمدی هیچ ذکر کردن و اما و یا چون اصلا امده قراری نرگفته و اما احتمال اکتکاری علاقه این حالیه و موالیه متقدمه و مترخی و اصلا و علاقه جمعی آهاده تقاضیر سلاسه مرجع از ثابت زهور از ثابت و جزاره نیست این که در اگر ما احتمال بگیم که ایشون ذکر نه ترموزه به خاطر یک ترینه ای به خاطر نکته ای یه روز ارز کردن مرموم صاحب اینه که اصولت مشکلاتی ما در رواز داره که یکی هم تا اساسش بر داره به طبیعه استضاعه صاحب هداره یک حل واحدی داره برای کل مشکلاتی روازه هست و اون طبیعه هست نظام تکرار میکنه توحمر عرض طبیعه علا دیه هست و کل در دیه تمام مشکلات رویش هست به طبیعه این مثلتی عدم تکر قدید مصرح نفی این محضم ما نه به اصابت و ظهور ثابت میکنیم که ازه این رو نیش اصباک کرد اصابتا این درسته این مطلب در کلام اغلایی به طور کدی میاد اما چون ما یک ادهی از روایات داریم من که دارن ارز کردم که از مزایی کتاب جامع احادیث مسته اون جلد به اصاب اول دوم چاپ قدیمش نه این چاپ فیلی که در زمان خود مرموم آی بروژه چاپ شده یکی از ذرافت هایی رو که آی بروژه دستور دادن در این کتاب مراعاست بشه در کتاب جامال احادیست و تا حدی مراعاست برای این هایی بردی مترزبانه مراعاست نشده یکی از خوبیه های مرموم آی بروژه این کتاب وقتی یک با احادی تیز داره که داره محن واقعیت سرگ میکنه در زمه با همه احادیث رو به نفر دست بندی بیاده این خیلی کار خوبیه مثلا ما به داریم که از امام سؤال میکنه فصل و احلال زدر ما هستیم می فرماید که سؤال میکنه که هره این هست سؤال می کنم برد سؤال میکنه هره ای کمون جواب می نه راکع این ها این ها اجب نه این ها این ما اجب نه این ها امزن نه من رو کل این دوازده توی همون باور فتوی یعنی. هم نه تو یک جا بود کویش می‌کنند. پس این ده تا دوازده مادونشین را پیش ارم آورده که مثلاً در بهار اگر یک مثلا یه یک دوازده این اول ای بین که اینه مثلاً, ای ای ای مثلا اینا اینا اینا هم رنن سبب مصدع می‌کند. یکی جه اول آب باور دیگری وسط وقت باور آخر باب نه آیگوریزیم مثلا کل دوازده نه هم رنن نه حدیث نه سبب مصدع. این را پیش ارم آورده تو یک باور واحد. بابشوی جزا نگرده چیه یک بابای متونی که شبیه همه توی سره مورده این کار خوبیه این صاحب این تذکره میخواهم برن چون در این جلدهای دردی جامال احادیست در اون جهاتی که واضحه این شاه تنمال بشه نمیخواهمن اینجا از ذکر این مراعات نشده اما در اون جلده اول مثلا در اون مقدمه های کتاب تهارا که زمان خودی بیشان شده, این شده. شو هر با احادیثی که مضمون وارد و وارده اینا مثلا 5 شد 6 شد 7 شد همه رو خوش هم بوده به ما ثائقه بیان در هر با 3 تا تا اگر روایت هست هر ثائقی رو جلو این کاره بسیار بنزرم لطیفی نکات فنی خوبی داره البته خب یه راه راهی میگم هست که فعلا هر این کیشون پروندن. بنایه بر بروجیت ظهور است ولی اینکه که مثلا ذهبی درسته اصل این بنا درسته اما در رواه تحبیده درست نیست این مطلعه که ایشون فهمیدن که این موقعات توضیح برن چون همون نکته که عرض سکت مسئله تقییه و شعورت زمانی و مکانی رو از ذهبیت بکار نبوردن فهمدن ذاته علینا این شعنا همسخنا و این شعنا عجبنا سوال شما لازمه اما جواب بر ما واجب نیست این هم راج به این مثلا و اما احتمال احتکار بر قرینه این احتمال احتکار بر قرینه که فرند به بر قرینه اخلاقی الشانیت قرینه این چندان واضح نیست نه در کلمات عینه و در اصطلاحات اهل یک هم واضح نیست یعنی اصولا مثلا یک فقید در زمان امام صادق در قرن یه صحبتی میکنه این یک قسمت های خاص زمان و خودش رو داره نه اصلا در قرن دوبون مثلا در میهه اول قرن دوبون اصولا بین خورم های اهل سنت هم بحث حدیثی نبود حالا یه حدیثی بعدها گفتن سر ظریفه. یه فقیر ی عامل ثبتی این تزوآ داده از تزوای اون فقیر نمیشه فهمید که معناش اینه که اون حدیث صحیحه این دقت بکن چون جذب فکری نداره این جذب فکری مطرح نانو این جذب فکری این که مثلا صحیحه این اصطلاح رو دارن صحیحه اینه الحسن مرادینه اصلا این جذب فکری اصلا ادعا می‌کنن ادعای اهل سنت این جذب فکری مثلا این حدیث در مشکلا در نه ریاده یه حدیثی مستعد حکمه مثلا فرسان در نماز این حدیث مرسله فرس ابو هنیفه به شرطان در شافی به شرطان این اگر بیریم نبیه این معناسی که مثلا ابو رو به طور کدید هستواش اینه که مرسل میشه عمل کرد نه اینا نبود این اصطلاح نبوده اینا اسمش قرائنه حالیه و مقالیه است درسته این قرآن ها حالیه و مرحالیه یه قرآن عمومی و بروشی داریم یک قرآن عرف خاص داریم این نقطه ایستیم مخواب بگرد اینه اون تعمال بفرموید آنه اصلا عبادتشون رو میخونه و شون مخواب معلوم باشه که کجا داریم تر اشتالی کنیم اگر ما یک عرف خاص داشتیم آیا اعتماد برای عرف خاص میشه کرد یا نه این خودش یک بحث بسیار تنگیدی هیچ حاثی قراره نبینی اثرش کنه حالا نه یه مثال بزنم مثال زیاد ولی یکی بزنم یه بحثی بوده به اهل سنت در به اصطلاح نماز در حریف یکی دوستا مثال بزنن خب ارده از اهل سنت میگفتن نماز در حریف باطل اهل مودن درست خان اهل سنت در خلا در حریف اصلا خبر حدیث ندارن کلم نه چرا اختلاف کردن؟ اختلاف نه همون بحث اشنان هم از... نریده؟ این اون پیغمبران اهل ازهری که فراموندن این بحثی داره که پیغمبر پیغمبران اهل ازهری فرمودن نماز باطل است نماز در نماز اصلی پیش ما اذهی چون به اجتماع اشتمام بودن و نماز درست اذهی قایدی به اشتمام بودن که نماز باطل درست کردن این بینا هم شنند در روایات ما اون وقت سحری رو آمده سال به حکومتی یک جور روایت نداره در روایاتی که من موجود داریم کنه از امام ساده این حدیث واضح راجع به نماز در حدیر نداریم اما از زمان حضرت رزاد داره لاسوسلی ما به عنوان لاسوسلی فلحری داریم اصحاب هم حکم کردن که نماز در حدیر باطله مثل نماز در قصر نیست که محل اشغال اشتوال باشه چرا شون لاسوسلی فلحری داریم, داریم. یعنی اصحاب ما فرق رو دشتن بین سلاح در قرص چون گفتن قایتاً درسته حالا احتیاطی یا روژه ها که مثلا نخونه این بیان گفتن نماز در قرص باطله اما در هری اتفاقی کنه که نماز باطله گفتن لازم سلب اله از باب نقیه در عبادتی این موجه و به خلاف قرص دلیل ایشی هم همین رواد حضرت خب ببرید شما بحث اینه که این ربایت حضرت عزیزا سامولا علیه رو چیشون تفسیر بکنیم یک <تصفح> <تصفح> <تصفح> این ربایت حضرت عزیزا رو جرب و معنا معنی بکنیم رو جرب و معناش این اینه که یعنی در اون زمانگه میگوستن که حضرت علی در جرب و فکری نماز نماست در حلی نخون اینا میگوستن که حضرت عزیزا غالب امتناه چلا؟ چون در جبر فیخی مفروغان هم بود که از خیمنبر حدیث در, در حریر هست نه در خلاف بوده قدر کردی جبر فیخی این بود و اگر جبر این باشه پس بنابراین صاحب در قصد مثل حریر هم فهم میکنید پس اینکه آیا اتکال برقرینه یا حالیه یا مقالیه از شدم مراد از قرآن در اینجا قرائن عامه نگیریم قرائن استلاحی بگیریم اگر قرائن خواسته گرفتین اون وقت مسئله فهم و مثال دیگه فرسیم این با مثال اهل سنت اختلاف کردن که آیا زنی که ازی هیز پاک شدن تو قسله کرده یه جوز و رکی نه خب اجتوی قاره به استثاف شدن استثاب بقاها و فرمت گفن ادعیه گفتن استصحاب جاری می در شواهد فقهی استصحاب جاری می شود اساس برائت را کردن مثلا یه است جنبه فقهی این خصوصا این جنبه فقهی تابع این اسسای استصحاب جاری می یا جاری نمی حالا تو روایات ما جنبه فقهی نمی اما صورات ما خود این مطلب آمده به از موارد نسبتاً کم روایت ما سقی تعارض نداره یعنی چند تا روایت در تمامش اجازه داده شده باز که فقط قتل مورد میشه و لا اصلا ما دراری که قوس بکنه تخصصه نداره خب ولی بحث اینه که از این روایت چی بگه الان اصحاب ما از این روایت سنن تعبد در این مورد خاص لكن اگر قرینه حالی و جلب شمنی رو در نظر بگیریم جلب شمنی معnash عدم جریان احتساب رسول که الان مشهور بین اصحاب ها لاغر مشهور از زمان شیخ انا زمان مرحوم وحید بهواني وين وقت قبلش خیلی جو اما اصولی ها چون اخبار رو به شدت با اعتراض کردن بعد از مرحوم وحید ای بهواني یکی از مشخصات اختلاف بین اخباری و اصولیان اختلافشون که در جواب روزمی جاری میشه نیست اما خوبه که مرحوم مصطفی آی کوی برای انشاء تیجه صناعتون قابل جدیدی چون تخاخوره یکی میشد که خلاص کنه که از موارد سخت اختلاف اخباری ها با اصولی ها سر همین جریان اختلاف بود پیدر شباز حکمیه کلیه آیا استثاب شده میشه؟ ما اگر دارید چقدر ترک کرد مطلب این شما حال دیگرم به قرینه ظهور اصافت و ظهور ما همین موردیه اما با استکال به اون قرینه حالیه که اینجا استثابه دیگه موردی حساب نمیشه این دو تا مطلب مثال یه مثال دیگه هم ارز کردم روایت داره که اگر کسی به کسی مدیون بود جلو شهر شراب فروخت پول شراب به اون داد این اشکال نداره از هم دیر کرده خب این ما چی قبولیش قبولی میکنه تو خر شراب که جای نمیدونه شراب رو مال نمیدونه حالا فرلو من فرو شراب نقااتقدر شده چه کار میکنه؟ این فرتو مس اگر در سر پتو باشه شراب به ده تا پتو فروخت پتو به من داد ظاهب تا 5/ ش سرواده سر هم هست کان و الهارت بنند تنظر و در این مطلب در میان تفاوای عامه در تبیح معاصر امام صادق در کتاب المدوره کبرای مالک آمده چون امام صادق در مدینه بودند اعتماد بر ای که در مدینه جرس دیے مدینه دیگر اوغلایی که نه جامعه غیر نیست در عبارت مالک در مدردن اصول کورا آمده اهل زنمه نه مطلق رجوع یعنی شما از یک مسیحی پول میخواستید نه از یک مسلمان بزنید. چطور بزنید. شما کنید چه از دیگه همون شما مسیحی پول میخواستید این مسیحی فروخت شراب رو جلو شما از فروخت قرضش خودش رو کرد مالک کنگی اشتال ندارد بخش شما چیه اما اصحاب ما عرضشون را همین مسئله در مسئله بحث مکاسره گذاره اصحاب ما تمام روایت رجل داره توش یک دون محرز نداره مسئله چیکار تو تمام روایات ما رجل آمده نزه اصحاب گفتن چه قاعده اگر مسلمان هم باشی این کارو بکنه حالا سنی شیعه این کارو بکنه جایز اما اگر شما اون قرینه خالی یعنی قرینه فتوایی قرینه فقهی بگذارید بکنید پس اگر مسلمان شراب فروخ پول قرض نمیخواد باشه این موردش فقط در خصوص اهل ذمه است و خطت بکنید حتی مالک میگه اگر اهل ذمه فروخ بخواد پول رو به شما هدیه بده اون به پتو فروخ بخواد طوق رو هدیه بده اون نمیشه با اگر مدیون بود قضا میشه شویم شه خوب توجه بکنید توجه مولت انسان دلیلش هم خیلی واضحه چون میگه اهل زمین در زمان رسول الله بودن پیرامد رایانه زن مقررات داده بود جزیره قرار داده بود پول قرار داده بود پولی که لذت بیشومود گاهی از خرید فروش خوب بود باید از خالد فروش شراب بود میدادن پیغمبر میگه پس پول شراب رو اهل زمین به عنوان و فعال محافظ خوب بود. تا هر چیزی که در زمان رسول الله بود زنمه اونها به حکومت مشغول بود مالیات بازی داده اون زنمه خودش رو از مالیات با پور شراب به رسول داده حالا اگر شما به شما هم زنمه مشغول بود اون میشه به درسته بازید زنمه در زنمه به خلاف مثل ابوهنی که اون گفت نه شما هم شراب داری خود این به شراب بده به مسئله کنیش به تو بوده در درسته این تطویه به این دو نفر چقدر ترمو کن وقت ما این روایت رو اصلا پنش تششیش اینه بس اجایی به این واقعا منم متحیرم که چیگون شده اون قطعا این رو بیدیم تو کلمات این ما آمده تو تمام روایت ما رجوع میداره بگنم رجوع آخر. تو هیچ کدوم از اینها ها اهل اصحاب متاخر ما هم واقعا متحرید هم چه کار با این چون دفعا خلاف چطور میشه مسلمان شراب بسرد که پتو بگه بعد پتو رو به شما بزه اصحاب متحرید اصحاب متحرید اصحاب متحرید این نکته ایز که برمومه استاد در اینجا برموندن این یک ذهنیتی بوده این خیلی باب وکیه انصافه هم. و نمیخوام الان نتیجی گیری نهایی بکنم اما این یکی از مشکلات اساسی در کارهای ما هست. گاهی مطلی در رواد آمده مطلق مراد مقیده گاهی مقید مراد مطلقه این یکی از مشکلاته ازمان تو استاد فرمودن که احتمال تحمد در عدم ذکر قیمه منفیست و اصالت زهور این در کلمات متعارف شاید قبول بکنیم اما در کلمات اهل بیت که خودشون فرمودن ذاتعه اونا آنا فمنون آنسک به غیر حساب این با تصریح خودشون این مش... مشکل داری این رو ما در بحث تفیض هم متعرض شدیم گفتیم یکی از شعونی که پیغمبر رحمه علیه مصران داشتن تشکیر در مرحله بیان این رو بود متعرض شدیم یه شری داره توضیح طولایی داره که توی بحثت آقا زن دوره سابق متعرض شده این شامل اگر باز جایی مناسبی بود اونجا متعرض میشه احتمال استکال برگرینه اینه ای از موارد اخلاق کلی ما با آقایان برد با محوم استاد نیست خلاصش اینه که اگر قرینه سقه هایی باشه بوده پس اون قرینه خاصه باشه به قسمتان استکال برگرینه خاصه نه قرآن این اصل اوغلاوی نداری تو این به اساس ظهور اون قضیه رو برده من می‌خوام اینو بگم. روشن اگر ما قرینه خاصه داشتیم مثلا در اون زمان تا میگفتن که امام رضا فرمود لازم سن نفر همین قثعا ذهن فقها هر فقیهی می‌فهمه که علی بن موسی الرضا هم به ساول الله علیه و آله قثعا اینجوری نمی‌سنگه که رضا قائل به اشاره امتناع من چند بار این مطلب رو عرض کردم مطلب لطیفی دقت بفرمایید این مباحثی که ما الان که اصول داریم خیلی هاش از احدث صحابه مطرح شده دقت کنید لکی نه به عنوان اصولی به عنوان فرع فقی بعد ما از اواخر قرن دوم از سالهای 180 اینها جدا شده شده اصول یعنی <تصفيق> <تصفيق> بحثی مثل اجتماع نفی عمران در کلام صحابه نیامده اما این بحث آنگه که اگر در لباس خرسی نماسون یکی میگفت درسته یکی میگفت درستی میگف اون که میگفت درسته تردیجن شد اصولی اجتماع اون یکی میگفت درستی تردیجن شد اصولی ازدکان دقیقا فرمانید؟ لذا خوب ده خرس بکنید یک دیگه سال اولیه گالی اوقات اصولی در شکل مباحث فکری آمده این یک نکته مهمیه این اینه که البته الان من ارجین اون خدمت متعارف تو ائمه اینو نمیفهمند یعنی متعارف تو ائمه میگن لا تصلف الحریف این از قبیل نهی در عبادات این شما امن هست میگن چون امام رضا نه خب این در میان اهل سنت چی چیزی در تاریخ فقه اسلامی چی در درامات امام صادق امام باقر هم نه چی میگن مثال امام رضا علیه السلام نه فرمودن این پس میشه کلامی از رسول الله از وقت این باید بالاخره بررسی بشه این بخواهی لزوما نتیجه نهایی بگیرم یا اون مطلب که مثلا وقتی زن قبل از اختصار و بعد از نها جایزه میگن صحیح احل سنت استثاب جاری کردن وقتی چون امام صادق خاندن این معنیش اینه که این سنت از رسول الله دارن یعنی اون ذهنیت رو من توضیح بلن اونا اون ذهنیت آمدن مورد رو بدون دون یا حالی یا مقالیه حساب کردن البته انشاءالله تو بحث زواهر من همین مثال ها رو چون یه بحث لطیفی هم هست خود این بحث که آیا این مدرولهایی که در کلام از این هست مثلا از این کلام بفهمید اعیمه به امتنام هم از این کلام بفهمید که اعیمه غالب که استثاب جاری نمیشه مثلا آیا اینها هم جز دلالت هست ما رو این برستون برمیگرم توی برسته از دوار دو مرتبه اونجا این مطلب رو سوزی میدید پس این سه موردی رو که ایشون فرمودن بناه اقلا هست و اصالت و ظهور این درسته از کار برمیشون متعبز یک مسئله یکی که های اصالت و یک اصالت و ظهور یک اصالت مستقلی یا برگشتی و اصالت تعدمی قیره اصالت و حیره ایشون فرمودن اصالت و مستقلیه این مطلبی ایشون هم درسته که بعد متعرض توضیح بودید توضیحات مراجع به این تذیل کلام ایشان الله تعالی فردا خود عبارت ایشان به ازن الله تعالی از اول بحثی که ایشون فرمیدن چون ایشون بعد از این که وارد بحث شدن در اصالات و ظهور سه تا نقطه بحث رو در سه جهر قرار دادن یکیش در قاضی عامل در اساطور زودی شد در کلمات محقق قومی که در کلمات اخباری ها من طلبت این عبارت دیگر ایشون هم میخونی اون وقتی کلیاتی که بحث داری و مربوط محقق قومی را میخونی وقت وقت بحث, بحث میشه انشاءالله اتوانه و سالالله آمد